بسم الله الرحمن الرحیم برام خداوند بی اندازم حبان نهایت باره را این آیات کتابی با حکمت است آیا برای مردم اعجاب انگیز است که به مردی از ایشان وحی فرستادی که مردم را از عقیبت اعمال ناشایسته ایشان بین بده و به مسلمانان مجده بده که ایشان در حضور پروردگار خیش مقام ارجمندی دارند؟ کافران گویند این واقعا جادوگری آشکار است بیگمان پروردگار شما خداوند است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید و آنگاه بر عرش مستویل شد تدبیر کاری جهان را می کند هیچ شفاعتگری نیست مگر بعد از اجازه او این است خداوند پروردگار شما پس او را پرستش کنید آیا پند نمی گیرید بازگشت همه شما به سوی اوست وعده خداوند حق است بیگمان اوست که آفرینش را آغاز می کند و سپس آن را تکرار می کند تا کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند با انصاف پاداش دهد و کسانی که کافر شدند برایشان شان آشامیدنیاست از آب سوزان و عذاب دردناک و سبب اینکه کافر گردیدند اوست که آفتاب را درخشان گردانید در و ماه را تابان ساخت و برای آن مراهل را قرار داد تا تعداد سالها و شمار وقت را بدانید خداوند اینها را نیافرید مگر به حق آیات خیش را به گروهی که میدانند تفصیلوار بیان می کند بیگمان در اختلاف شب و روز و در چیزهایی که خداوند در آسمانها و زمین آفریده است نشانه های است برای کسانی که می ترسند. آنهایی که امید ملاقات ما را ندارند و به زندگی دنیوی خشنود گشته و به آن آرامش یافتهند و آنهایی که از نشانه های ما غافلند هم آنها اند که جایشان دوزخ است به سبب آنچه می اندوختند بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو کردند آنها را پروردگارشان به سبب ایمانشان هدایت می از زیر قصرهای آنها نرها در باغستانهای سرشار از نعمت جریان دارد دعایشان در آنجا پاکی با کی بار خدایا آمی باشد و تهیت یعنی خوش آمدیلشان سلام است و نهایت دعای ایشان آن است که ستایش مر خدای راست پروردگار عالمیان اگر خداوند به مردم شر را زود می رسند، همچنان که ایشان به دریافت خیر شتاب می بیگمان گمان اجلشان به ایشان بر سر رسانده می شد، پس کسانی را که امیدوار به ملاقات ما نیستند، در سرکشی ایشان سرگردان می بزن. چون انسان را مهنتی رسد، ما را در حالی که به پهلوی خود دراز کشیده است یا نشسته، یا استاد است میخوانند ولی همین که مهنتش را از او برطرف کنیم برای راه خود میرود به گونه ای که گویا هرگز ما را برای برطرف کردن مهنتی که با او رسیده نخونده است این چنین برای مردم مصرف عمل کردشان نیکو جلوه داده شده است و بیگمان نسلهای های پیش از شما را چون ظلم کردند حلاک ساختیم و در حالی که نشانه های روشنی را به ایشان آوردند ولی ایشان حاضر نبودند که ایمان آورند این چنین مردم گنهکار را مجازات می کنید سپس شما را در روی زمین بعد از ایشان جانشین گردانیدیم تا ببینیم چگونه عمل میکنید. و چون آیات روشن ما و ایشان خوانده می شود آنهایی که با ملاقات ما امیدی ندارند گویند برای ما قرآن غیر از این بیاور یا این را تغییر بده بگو من این صلاحیت را ندارم که آن را از پیش خود تغییر بدهم من همان چیز را پیروی می کنم که برایم وحی شده است بگو من اگر فرودگارم را نافرمانی کنم از عذاب روز بزرگ میترسم بگو اگر خداوند اراده می کرد آن را برای شما نمی خواندم و نه هم خداوند شما را به آن آگاه می گردانید من در میان شما پیش از این نیز و عمری را سپری کردم پس آیا شما در نمی آبید؟ پس کی تر از کسی که به خدا دروغ بربندد یا آیات او را تکذیب کند به گمان مجرمان هرگز رستگار نمی شوند؟ ایشان با جز خداوند چیزهایی را پرستش می کنند که با ایشان نظره می رساند و نه نفعی و می گویند اینها نزد خداوند شفاعتگران مایند بگو آیا شما خداوند را از چیزی که در آسمان و زمین است و او آن را نمی داند آگاه می سازید؟ پاک است ذات او و است از چیزهایی که شریک او می پندارند مردم نبودند مگر ملت واحد پس اختلاف ورزیدند و اگر کلیمه قبلا از جانب پروردگار تو صادر نمی شد حتما در مسائلی که در آن اختلاف می ورزیدند فیصلا می شد می گویند چرا از پروردگارش به سوی او آیه نازل نشد پس بگو واکیان علم غیب نزد خداست پس انتظار بکشید من نیز با شما از منتظرانم و چون مردم را بعد از سختی که به آنها رسیده رحمتی به چشانیم ناگاه در برابر آیات ما دسیسه می چینند بگو خداوند در بی اثر دسیسه تر است بگو من آنچرا شما دسیسه می چینید فرستادگان ما یعنی فرشتگان می نویسند اوست که شما را در بر و بحر توان راه می دهد تا آنکه در کشتی قرار گیرید و کشتی ایشان را با وسیله باد موافق ببرد و به آن خوشنود شوند ناگاه با ایشان باد شدید از جانب مخالف بوزد و به ایشان از هر طرف معوجهای طوفانی بیاید و بیاندیشند که از هر طرف محاصره شده اند در این حال خدا را با اخلاص می خانند گونه‌ای که دین خویش را خالص از از او اند و می اگر ما را از این حالت نجات دیهی بیگمان از شک گذاران می باشی. اما چون خداوند ایشان را نجات داد بی در روی زمین به ناحق ستم می کنند ای مردم بیگمان ستم شما بر خود شماست بهره از زندگی دنیا را کمایی می کنید و سپس بازگشت شما به سوی ماست و در آن وقت شما را به آنچی می کردید آگاه می سازید. بیگمان مثال زندگانی دنیا مانند آبه است که آن را از آسمان فرود آوردیم. سپس با وسیله آن روی های زمین از هر قسم به هم مخلوط کردیم. از آنچه مردم و چارپایان میخورند تا اینکه زمین زیبایی خود را به دین وسیله فرقا گرفت و زینت یافت و مردم آن پنداشتند که بر آن دست یافتهاند. ناگهان در شب یا روز فرمان ما به آن می رسد و آن را به فصل دروشده مبدل می سازیم که گویا دیروز وجود نداشته این چنین ما آیات خیش را برای مردم متفکر به تفصیل بیان می کنیم و خداوند به سرای سلامتی می و هر که را بخواهد برای راست هدایت می کند. برای کسانی که نیکوکاری ورزیدند مزد نیکیست و زیاده از آن نه سیاهی را می و نه هم زلتی هم ایشانند یاران بهشتی در آنجا جاودانه و سر می برند اما کسانی را که اعمال بدی کسب کرده اند جزای بدیست مثل آن زلات روی ایشان را رو می پوشاند ایشان را از عذاب خداوند نگهدارنده نیست گویی چهره ایشان با از سیاهی شب تاریک پوشانده شده است هم ایشان اهل دوزخ ایشان در آنجا همیشه با سر می‌برند روزی که همه ایشان را جمع کنیم سپس به مشرکان بگوییم شما و شریکان شما به جای خود باشید پس ایشان را از یکدیگر جدا کنیم شریکانشان به آنها میگویند شما هرگز ما را پرستش نمی کردید پس خداوند خود در میان ما و شما به حیث گواه کافی است. ما یقینا از این پرستش شما بخبر بودیم. آنجاست که هر کسی با آنچه از پیش فرستاده مبتلا می شود و سوی خدا مالک حقیقی خیش برگردانیده می شوند و چیزی را که افتراع کرده بودند از ایشان گم می شود بگو کیست که شما را از آسمان و زمین روزی می دهد آیا کیست که مالک شنوایی و بینایی شماست آیا کیست که زنده را از مرده بیرون می آرد و مرده را از زنده بیرون می آرد و کیست که کارها را تدبیر می کند؟ پس ایشان وجودی خواهند گفت خداوند است که این کارها را می کند. بگو پس چرا نمی ترسید؟ چنین است خداوند پروردگاری بر حق شما پس آیا بعد از حق جز گمراهی وجود دارد؟ پس چطور از حق برگردانده شوند؟ این چنین حکم پروردگارت بر کسانی که فسک کردند متحقق گردید با اینکه ایشان هرگز ایمان نمی آرد بگو آیا شریکانی شما کسی هست که آفرینش را آغاز نماید و سپس آن را اعاده کند بگو این تنها خداوند است که آفرینش را آغاز و سپس اعاده می کند پس چگونه از راستی برگردانیده می شوید بگو آیا شریکانی شریکان شما کسی هست که با سوی حق هدایت کند بگو این خداوند است که با سوی حق هدایت می کند پس آیا کسی که سوی حق هدایت می کند سزاوارتر است که پیروی شود یا کسی که خودش راه نمی یابد مگر اینکه هدایت شود پس شما را چی شده است و چی گره تضاوت می کنید؟ اکثرشان جز گمان چیزی دیگری را پیروی نمی کند واقعا گمان انسان را از حق هرگز یا ساخته نمی تواند بی گمان خداوند و, و آنچه می کند آگاست. جای ندارد که این قرآن به غیر خدا نسبت داده شود ولی تصدیقی است برای آنچه پیش از آن نازل شده است و تفصیل کتاب است یعنی کتابی که در آن شبهی نیست کتابی از جانب پروردگار جهانیان آیا می آن را محمد افتراع کرده است؟ بگو سوره همانند آن را بیاورید و جز خدا هر کی را می توانید به کمک فراخوانید اگر صادق هستید. بلکه چیزی را تکذیب کردند که به آن از نظر دانش احاطه ای ندارند و هنوز معنای واقعی آن برایشان متحقق نشده است اینچنین کسانی که پیش از آنها بودند نیز درو بربستند پس ببین که آخر کار ستمگاران گاران چگونه بود از آنها کسانی اند که با این کتاب ایمان می آورند و کسانی اند که به آن ایمان نمی آورند و پروردگار تو به حال مفسدان آگاه تر است اگر تو را تکذیب کردند اند ایشان بگو عمل من برای من است و عمل شما برای شما از آنچه من می کنم شما بیزارید و از آنچه شما می کنید من بیذارم از ایشان کسانی اند که وانمود می سازند و تو گوش را می دهند آیا تو مردم کر را شنوانده می توانی چه ندانم؟ و از ایشان کسانی اند که وانمود می سازند و سوی تو می نگرند آیا تو مردم کور را راه راست نشان دادن می توانی چه ندیدند؟ بیگمان وان بر مردم هیچ ستمی نمی کند ولی این مردم هستند که بر خود ستم می کند و روزی که ایشان را حشر کند چنین فکر می کنند که گویا جز ساعتی از یک روز در دنیا درنگ نکردند یک دیگر را می و واقعا کسانی که دیدار خدا را تکذیب کردند زیانکار شدند و ایشان را یاد نبودند خواه بعضی از چیزهای را که به ایشان وعده کرده ایم در این دنیا به تو نشان بدهیم یا اینکه که ترا پیش از آن بیمیرانیم در هر صورت بازگشتشان به سوی ماست سپس خداوند بر آنچه چه می کنند گواست برای هر قوم است؟ چون پیامبریشان آمد میانشان به انصاف فیصله می شود و بر ایشان ستم نمی شود می گویند این وعده چی وقت به سر می رسد اگر شما راست گویید بگو من به زیان و فایده رساندن نمی توانم مگر آنچه خدا بخواهد برای هر امتی است. چون معاد بس به سر رسید نه آن را ساعاتی تأخیر کرده می توانند و نه هم تقدیم بگو ببینید اگر عذاب او در شب یا روز به شما بیاید گناهکاران به چه چی چیزی آن شتاب می آیا باز هنگامی که عذاب آمد به آن ایمان می آورید اکنون او در حالی که پیشتر به آمدن آن شتاب داشتید سپس بسیتم گاران گفته می شود عذاب همیشه را بچشید آیا جز به آنچه کسب کرده ایت جزا داده می از تو می پرسند آیا این روز جزا حق است؟ بگو آری و سوگن به پروردگارم که واقعا آن, آن حق است و شما از آن جلوگیری کردن نمی توانید اگر هر ستمگاری دارایی روی زمین را در اختیار خود داشته باشد بگمان آن را فتیه می دهد وقتی که اعذاب را می بینند بشیمانی خود را میپوشند و در میانشان به انصاف حکم می شود و بر ایشان ستم نمی شود آگاه باشید بگمان آنچی در آسمان حوزه و زمین از آن خداست آگاه باشید بگمان و خداوند حق است. مگر اکثرشان نمی دانند اوست که زندنی گرداند و نیمی راند و سوی اوست بازگشت ای مردم بیگمان برای شما جانب پروردگار شما پنده آمده است و شفای برای آنچه در سینه هاست و هدایت و رحمتی است برای مؤمنان بگو خدا و با فضل خداوند و به رحمت او به این چیزها باید شادمان شوند این از هر آنچه می اندوزند بهتر است بگو آیا دیدید آنچه را که خداوند برای شما از روزی فرو فرستاد است شما بعضی از آنها را حرام و بعضی را حلال گردانیدید بگو آیا خداوند با شما اجازه داد است یا بر خدا افترا می کنید کسانی که بر خدا دروغ می بندند، آیا با مجازات روز قیامت چی فکر می کنند بگو خداوند با مردم صاحب فضل است ولی اکثرشان ناسپاسند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 آگاه باشید. بیگمان بر دوستان خدا ترسی نیست و نه هم ایشان اندوهین میشوند آنانی که ایمان آوردند و تقوا داشتند برای ایشان هم در دنیا و هم در آخرت مجدگانی است در سخنان خدا تغییری نیست این است و رستگاری بزرگ سخنشان تو را اندوهین نسازد حقا که عزت کو از آن خداست اوست شنوا و دانا آگاه باشید بیگمان هر آنچه در آسمان ها و هر آنچه در زمین است از آن خداست و کسانی که جز خدا چیزهای دیگر را به حیث شریک نیایش می جز گمان چیزی را پیروی نمی کنند و نیستند ایشان مگر اینکه دروغ می گویند و اوست که برای شما شب را آفرید تا در آن آرام گیرید و روز را بخش گردانید حقا که در این پدیده ها است برای مردمی که می شنوند. گفتند خداوند فرزندی گرفته است پاک از او هم اوست بینیاز آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست شما بر این ادعای خود حجتی ندارید آیا در درباره خدا چیزی میگویید که نمیدانید؟ بگو بدون شک آنانی که دروغی را بر خدا بر می بندند، هرگز رستگار نمی شوند آنها از های دنیوی استفاده محدودی می کنند سپس بازگشتشان به سوی ماست و در آن فرصت به ایشان عذاب شهید را میچشانیم و به سبب آنکه کافر بود، بر ایشان داستان نوح را بخوان چون به قوم خود گفت ای قوم من اگر به شما موقف من و اینکه من به شما آیات خدا را یادآوری می کنم گران تمام می شود، پس من به خدا توکل کردم شما در زمینه موافقت خود و شریکان خود را فراهم آرید تا امر شما بر شما پوشیدن نماند و سپس حکم خود را در باره من صادر کنید یعنی به زندگی من فاطمه دهید و مرا هیچ محلت ندهید اگر از دعوتم رو برگردانید من از شما مزد نخواستم نیست مزد من مگر بر خدا و مأمور شده که از مسلمانان باشم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 سپس بعد از وی بسا پیانبران را برای مردمشان فرستادی ایشان با مردم خود نشانه های روشنی آوردند، ولی ایشان با چیزی که آن را از پیش تکذیب کرده بودند، ایمان نیاوردند. به تیم ترتیب بر دلهای تجاوزکاران مهر می سپس موسا و هارون را بعد از ایشان با سوی فرعون و کلانشوندگان قوم او با نشانه های خیش فرستادی ولی ایشان تکبر ورزیدند و مردم گنهکار بودند. چون به از جانب ما معجزه برحق آمد گفتند این واقعا است آشکار موسی گفت آیا درباره معجزه برحقی که به شما آمده است چنین میگوید؟ آیا این سهر است؟ در حالی که جادوگران هرگز رستگار نمیشوند؟ گفتند آیا تو برای آن به سوی ما آمده تا ما را از آنچه پدران خود را بر آن یافته ایم بگردانی؟ و تا بزرگیل روی زمین از آن شما یعنی تو گردد مگر ما به شما ایمان آرینده نیست. فراون گفت همه ساهران دانای را به من بیاورید چون ساهران آمدند موسی و ایشان گفت آنچه را از وسایل صحر افگننده بیافکنید پس پس چون ساهران وسایل صحر خیش را افگندند موسا گفت آنچه را شما آورده اید سهر است و بیگمان خداوند به زودی آن را باطل میگرداند حقا که خداوند کار مفسدان را به اصلاف نمی آورد خداوند حق را به کلمات خیش با همون ای که وعده کرده است تحقق می بخشد هرچند برای مجرمان ناخوش آیند باشد ولی به موسی ایمان نیاورد مگر فرزندان از قوم و آن هم با ترس از فرعون و کلان شویندگانشم تا مبادا ایشان را تعذیب کنند بدون شک فرعون در زمین سرکش بود و واکن او از اصرافکاران بود موسی گفت ای قوم من اگر شما واقعا با خدا ایمان دارید پس بر وی توکل کنید اگر تسلیم فرمان او هستید در جواب گفتند بر خدا توکل نمودیم پروردگارا ما را وسیله آزمایش مردم ستمگار مگردان و ما را به رحمت خود از گروه کافران نجات دیم و به موسی و برادر او وحی فرستادیم برای قوم خود در مصر خانه های تهیه کنید و خانه های خود را قبله بگردانید نماز را به تمام و کمال ادا کنید و مؤمنان را بشارت دید موسی گفت پروردگارا تو واقعا فرعون و کلان شدندگان قوم او را در زندگی دنیا زینت و سروت دارید پروردگارا تا مردم را از راه تو گمراه سازند اور ورج ایشان را نابود ساز و دلهایشان را سخت گردان که ایمان نیاورند تا عذاب در را ببینند خداوند گفت حقا که دعای شما دو برادر قبول شد پس استقامت ورزید و راه مردم نادان را پیروی نکنید بنی اسرائیل را از بحر گذرانیدیم. سپس فرعون و لشکریانش به قصد ظلم و تعدی ایشان را ترکیب کردند. تا چون غرقاب او را فرا گرفت گفت ایمان آوردم. با اینکه جز ذاتی که با او بنی اسرائیل ایمان آوردن معبودی نیست و من از مسلمانانم با او گفته شد حالا ایمان می آوری؟ در حالی که پیش از این عیسیان کردی و از مرسدان بودی امروز تو را به بدنت نجات میدهیم تا برای آیندگان خیش نشانه ای باشی و بدون شک بسیاری از مردم از نشانه های ما غافلهد بیگمان بنی اسرائیل را با جای شایستها جاگزین ساختیم و برایشان از چیزهای پاکیزه روزی دادیم ولی اختلاف نکردن تا هنگامی که به ایشان علم و دانش آمد حقا که پروردگاری تو در میان ایشان در آنچه در مورد آن اختلاف ورزیدند در روز قیامت قضاوت می کند اگر تو در مورد آنچه به تو نازل کردیم در شک هستی از کسانی که کتاب‌های آسمانی را که پیش از تو نازل شدن می خوانن بپس حق به تو از جانب پروردگار تو آمده است لذا از شک آرندگان ما باش. و نه هم از کسانی باش که آیات خدا را تکذیب کردن تا از زمره زیانکاران نشید بدون شک کسانی که بر ایشان حکم پروردگار تو تحقق یافته است ایمان نمی آورند. ارچند به ایشان تمام آیات هم بیاید تا آنکه عذاب دردناک را ببیند پس چرا اهل هیچ شهری به موقع مناسب ایمان نیاوردند که ایمانشان به نفشان تمام شود مگر قوم چون ایمان آوردند عذاب رسوا کنندهی را از ایشان در زندگی دنیا دفع کردیم و تا مدت اجلشان ایشان را بهرمند ساختیم و اگر پروردگارتون می خواست همه کسانی که در روی زمین اند ایمان می آوردن آیا تو مردم را مجبور می سازی تا مسلمان شوند؟ هیچ کس نمی تواند جز به اراده خدا ایمان آرد و خداوند شک را بر کسانی مقرر می که نمی فهمند بگو بنگرید چی چیز است در آسمان ها و زمین اما این نشانه و این بیمدهندگان هیچ کدام برای نامسلمانان سود بار نمی آورد پس آیا به چیز غیر از مثال روزهای پیشین یا انتظار میکشند؟ بگو انتظار بکشید من نیز از منتظرانم سپس ما پیامبران و مؤمنان را نجات می دهیم. این چنین بر ماست که مؤمنان را نجات دهیم بگو ای مردم اگر شما در مورد دین من در شک هستید من آنانی را که شما به جز خدا می پرستید نمی پرستم ولیکن من خدای را می پرستم که شما را می میراند و مأمور شده ام که از مؤمنان باشم و به من گفته شده که به سوی دین خالص رو آور و هرگز از مشرکان مباش و به جز خدا چیزی را که نه به تو سودی می رساند و نه هم زیانی مخاند پس اگر چنین کنی واقعا که از ستمگارانی اگر خدا با تو زیانی برساند جز او کسی دفع کننده آن نیست اگر او در حق تو خیر را اراده کند هیچ کسی بازدارنده فضل او نیست و هر کسی از بندگان خود که بخواهد از آن فضل میرساند و او آمرزنده و مهربان است بگو ای مردم بگو من با شما حق از جانب پروردگار شما آمد پس هر کی رهیاب شد حقا که با سود خیشتن رهیاب می شود و هر هرکی گمراه شد پس حقا که با زیان خیشتن گمراه می شود و من کارساز شما نیستم و آنچه را به تو وحی می شود پیروی کن و صبر کن تا خدا حکم خیش را صادر کند و او بهترین فیصل کنندگان است